فصل هشتم چند روز بعد که کشتارها تخفیف یافت چندتایی از حیوانات به یاد آوردند یا فکر کردند که به یاد دارند که ماده 6 فرمان گفته است هیچ حیوانی حیوانکشی نمی‌کند و با آنکه کسی قصد طرح کردن قضیه را در حضور خوکها و سکان نداشت ولی همه احساس می‌کردند کشتار حیوانات منطبق با فرامین نیست دلوبر از بنجامین خواهش کرد ماد به ششم فرمان را برایش بخواند. و وقتی بنجامین طبق معمول گفت در این قبیل امور دخالت نمی کند به سراغ مریل رفت او فرمان را برایش خواند و آن چنین بود هیچ حیوانی بدون علت حیوانکشی نمی کند به جهتی از جهاد دو کلمه بدون علت از ذهن حیوانات رفته بود به هر حال متوجه شدند خلاف فرمان خاری صورت نگرفته است چه کاملا واضح بود کشتن خائنینی که با سنوبال هم عهد بودند کاملا با علت است آن سال حیوانات حتی از سال گذشته هم بیشتر کار کردند تجدید بنای آسیاب بادی مخصوصاً مواد و برابر شدن استحکام دیوارها و تمام کردن آن در سر موعد به علاوه کارهای عادی مزرعه عمل طاقت فرسایی بود و بعضی روزها به نظر حیوانات میرسید که با مقایسه با زمان جونز هم ساعت بیشتری کار می‌کنند و هم بهتر تغذیه نمی‌شوند صبحهای یکشنبه سکویلر از روی قطعه کاغذ درازی که با یکی از پاهایش جلویش نگه داشته بود برای آنان میخوان که تولید مواد غذایی 200 درصد، 300 درصد و حتی 500 درصد افزایش یافته است. حیوانات دلیلی نمی‌دیدند که گفته‌های او را باور نکنند، مخصوصاً که آنها دیگر به طور روشن شرایط زندگی قبل از انقلاب را به خاطر نداشتند، ولی بعضی روزها دلشان میخواست ارقام کمتری به خود آنها می‌دادند و غذای بیشتر. در این ایام همه دستورات به وسیله سکویلر و یا خوک دیگری اعلان می شد حتی هر دو هفته یک بار هم در مجال دیده نمیشد. وقتی ظاهر می نه فقط سگها در ملازمتش بودند بلکه یک جوجه خروس سیاه رنگ هم که به منزله شیپورچی بود پیشاپیش او حرکت می کرد و پیش از سخنرانی ناپل اون قوغلی قوغو می گفتن، ناپل ناپلئون حتی در ساختمان مزرعه هم در قسمت مجزایی از سایرین زندگی می کند و غذایش را تنها در ظروف چینی اصل که در ویترین اتاق ناهارخوری بوده است میخورد و دو سگ برای گذاری در حضورش هستند. همچنین مقرر شد که در شب تولد ناپلئون هم مانند دو سالگرد دیگر تیر شلیک شود. ناپلئون دیگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمیشد. اسم او با عنوان رسمی رهبر ما رفیق ناپل آن برده میشد و خوکها اصرار داشتند که اناوینی از قبیل پدر حیوانات دشمن بشر، حامی گوسوندان منجی پرندگان و امثال آن برایش بسازند سکویلر در نوتخوایش عشق میریخت و از درایت ناپل آن و از خوشقلبی و عشق سرشاد او به حیوانات مخصوصا به حیوانات محروم سایر مزارع سخن میگفت عادت بر این جاری شده بود که هر عمل موفقیت آمیز و هر پیشامد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود اغلب شنیده میشد که مرغی به مرغ دیگر میگوید تحت توجهات رهبر ما رفیق ناپلئون من ظرف شش روز پنج تخت کردم و یا دوگاهی که از اسخ آب مینوشیدند میگفتند به مناسبت رهبری خردمندانه رفیق ناپلئون آب گوارا شده است احساسات عمومی قلعه در شعری که میلیما سرده بود و عنوانش رفیق ناپل اون گذاشته بود به خوبی منعکس بود چشمان نافذت که چه خورشید آسمان بخشنده تششع و گرمی است بر جهان چون افتد به وجودم نگاه آن در التهاب آن آیم و گویم به این زبان سرچشمه سعادتی و یار بیکسان کسان قمخار بی پدران حامی زنان رفیق ناپل اون گر ما به استبل روی کاه گر سیر گشته اشکم ما روز شب دوگاه از دولت وجود تو گشته است این چنین باور ندارد هر کس رو گو ببین اعتناع کننده کیست به ما این همه ام بزودود خاطر همگی راز هم و قم رفیق اونا گر خوک تو به من ایتا کند خدا، زان پیشتر که فتد راه روی پا، زان پیشتر که کشد قط به یک وجب، باشد ورا سنای تو همواره ورد لب، گوید بیاد ندارم جز این خدا، تا جان خیشتم به نمایم و فدا، رفیق ناپلاند. ناپلئون این شعر را پسندید و او داد مقابل هفت فرمان بر دیوار بزرگ نگاشته شود و بالای آن تمثال نیمتنه و نیم رخ او که به وسیله سکویلر و با رنگ سفید نقاشی شده بود نسب گردد در خلال این مدت ناپلئون با وساطت ویمپر در مقام معامله پیچیده با فردریک و پلکینگتن برآمده بود الوار هنوز به فروش نرفته بود فردریک بیشتر طالب خرید بود ولی قیمت عادلانه پیشنهاد نمیاد. هنوز شایع بود که فردریک و کسانش در مقام توطعه برای حمله به قلعه حیوانات و خراب کردن آسیاب بادی که حس حسادتشان را برانگیخته است هستند. مسلم گشته بود که سنوبال هنوز در پینج در کمین است. در عواسط تابستان حیوانات از اینگلس مرغ اعتراف کردند که به تحریک سونابال در توطع قتل ناپلعون دست داشتند متوهش شدند مرغها بیدرنگ اعدام شدند و احتیاطات لازم برای حفظ جان ناپلئون به عمل آمد شبها چهار سگ در چهار گوشه تخت خوابش پاس میدادند و خوک جوانی به نام پینکای غذای او را قبلا میچشید مبادات مسموم باشد در همان نوان خبر منتشر شد که ناپلون ترتیب فروش الوار را به آقای پلکینگتن داده است و معاملات پایاپای پای دیگری هم بین قلعه حیوانات و فاکس بود به عمل خواهد آمد هرچند رابطه ناپلئون و پلکینگتن از طریق وینپر بود ولی تقریبا دوستانه بود حیوانات به پیلکینگتن چون آدم بود اعتماد نداشتند ولی به مراتب او را به فریدریک که هم از او هراسان بودند و هم نفرت داشتند ترجیح میدادند وقتی فصل تابستان سفری شد و آسیاب بادی در شرف اتمام بود شایعی حمله خائنانه پردن بیشتر قوت می گرفت. گفته می شد که فردریک بیست مرد مسلح دارد و دم غازی و شهربانی را هم دیده است تا اگر زمانی سند مالکیت قلعه حیوانات را به چنگاورد معاخزه ای در کار نباشد به علاوه داستانهای دلخراشی از ظلم فریدریک نسبت به حیوانات از پینچفیل درس کرده بود که از اصل پیری را تا ساحت مرگ تازیانه زده است گابهایش را گرسنگی داده و سگی را زنده زنده به تنور را است و برای سرگرمی خروزها را با بستن تیغ نازکی به پاهایشان به جنگ با حیوانات قبل از اینکه با رفقهایشان به شود، خونشان جوش آمد و با غریب و فریاد میخواستند به پینچفیلد حمله کنند و آدمها را از آنجا برانند و حیوانات را آزاد کنند. اما سکویلر آنان را نصیحت می کرد که از اقدام به هر عمل ناسنجیده و عجولانه خودداری کنند و به درایت رفیق نابل اون اعتماد داشته باشند. با وجود این احساسات زده فریدرکی اوج می و یکی از یک شنبه ها ناپلئون آن در انبار حضور یافت و اظهار داشت که وی هرگز به هیچ گاه قصد فروش الوار را به فردریک نداشته و گفت طرف معامله بودن با شخص رزلی چون او را دونه شعن خیش میداند داند که هنوز برای دامن زدن انقلاب به خارج فرستاده می شدند، از قدم گذاشتن به فاکسود من شدند و همچنین جای شعار مرگ بر بشریت را مرگ بر فردریک گرفت در اواخر تابستان یکی دیگر از دسایس سنوبال آشکار شد. محصول گندم پر از علف حرزه شده بود و معلوم شد سنوبال شبانه تخم علف را با بزر قله مخلوط کرده است. آز ندی که اطلاعاتی از توت اداشت و به گناهش نزد سکویلر اعتراف کرده بود با غارچ سمی خودکشی کرد. حیواناتی که تصور می‌کردند سنوبال نشان شجاعت حیوانی درجه یک دریافت کرده است در این زمان فهمیدن که این موضوع صرفاً افسانه ساخته و پرداخته خود سنوبال بوده است و به او نه فقط نشانی اعطا نشده بلکه به علت نشان دادن بیلیاقتی در جنگ گاوی مورد سرزنش و توبی واقع شده است. حیوانات از شنیدن این مطلب بار دیگر مات و مبهوت شدند ولی سکویلر باز توانست آنان را متقاعد سازد که حافظه ایشان درست یادی نمی کند با کوشش رنج فراوان در پاییز که موسم خرمنبرداری هم بود ساختمان آسیاب بادی به اتمام رسید کار نصب آلات هنوز مانده بود و قرار بود ویمپر ترتیب خرید آن را بدهد ولی با وجود همه موانع و بی‌تجربگی و ابتدایی بودن آلات و عدوات کار و خیانت سنوبال کار درست در روز معین تمام شد. حیوانات خسته ولی مقرور گداگرد شاهکار خیش که به چشمانشان حتی خیلی زیباتر از بنای اولیه هم بود، راه میرفتند. علاوه بر زیبایی زخامت دیوارها هم دو برابر قدر دیوارهای سابق بود این بار چیزی جز مواد منفجره آن را نمیخواباند وقتی حیوانات فکر می‌کردند که چطور و تحت چه شرایطی کار کردند و بر چه ناملایماتی فائق اند و وقتی به زمانی که پرده‌های آسیاب به کار افتاد و رفاهی که در زندگی آنان به وجود خواهد آمد فکر می‌کردند خستگی از تنشان خارج می‌شد و دورادور آسیاب و خیز می‌کردند و غلیظ شادی می‌کشیدند ناپل آن به شخصه در ملازمت ها و جوجه خروسش برای بازدید کار آمد و به همه حیوانات شخصا تبریک گفت و اعلام داشت که آسیاب به اسم آسیاب ناپلئون نامیده خواهد شد. در روز بعد حیوانات برای جلسه فوقالعاده به تبیل احزار شدند. و وقتی ناپلئون اعلام کرد که الوارها را به فرد فروخته و واگن او برای حمل می‌رسد، دملگی از تعجب بر جا خشک شدند. حقیقت امر این بود که ناپلون در تمام مدتی که به دوستی پیلکینگتن تظاهر میکرد در خفا مشغول زد و بند با فردریک بود با پاکسورد قطع رابطه شد و پیامهای دشنامآمیزی برای پیلکینگتن فرستاده شد به کبوترها گفته شد دیگر به پینچفیلد نروند و شعار را از مرگ بر فردریک به مرگ بر پیلکینگتن تغییر دهند و ناپل حیوانات را مطمئن ساخت که داستان حمله به قلعه حیوانات افسانه بوده است و در نقل بدرفتاری فریدریک به حیواناتش بسیار اغراق شده است و چه بسا تمام شایعات از ناحیه سنوبال و شیشه گرفته باشد همچنین معلوم شد که سنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش قدم به آنجا نگذاشته است بلکه در رفاه و تجمل نسبی در پاکسفود زندگی می کند و در حقیقت سالهاست جیر خار پیلکینتن است کوکا از نیرنگی که ناپل آن زده بود یعنی با تظاهر به دوستی با پیلکینتن فریدریکا وادار کرده بود دوازده لید قیمت الوار را بالا ببرد خیلی کردند گویلر می گفت فضیلت ناپلئون در این است که به هیچ کس اعتماد ندارد و این عدم اعتماد را نسبت به فردریک هم نشان داده است فردریک می‌خواست قیمت الوار را با قطع کاغذی که به آن چک میگویند بپردازد اما ناپل آن هشیار قبول نکرده و گفته است باید تمام مبلغ با اسکناس پنج ای و آن هم قبل از حمله جنس پرداخت شود فردریک وچ را کامل پرداخت کرده و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشین‌آلات آسیابادی است. در خلال این احوال الوارها با سرعت تمام حمل می شد پس از آنکه همه را بردن، جلسه خصوصی دیگری یا تبیله تشکیل شد تا حیوانات های فردریک را ببینند. بقل آن با لبخندی حاکی از موفقیت و در حالی که حدونشانش را زیب پیکر ساخته بود، روی بستری از کاه بالای سکو آرمیده بود. در کنارش پولها در یک ظرف چینی به طور منظم چیده شده بود. حیوانات یکی یکی و با آرامی از جلوی آن گذشتند و با دقت بسیار به آن خیره شدند. باکسر پوزه‌اش را برای بو کردن اسنناس‌ها جلو برد و کاغذهای نازک را به خش و خش انداخت. سه روز بعد، هیاهوی عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگ پریده به سرعت با دوچرخه از راه رسید دوچرخه را در حیات انداخت مستقیما به ساختمان رفت پس از یک لحظه صدای قررش خشمالودی از عمارت نابدان بلند شد خبر واقعه چون بمبی در قلعه ترکید استاناس ها جعلی بود و فردریک الوارها را در ازایی هیچ خریده بود ناپل حیوانات را احزار کرد و با صدای وحشتناکی حکم اعدام فریدریک را صادر نمود گفت او را پس از دستگیر کردن زنده زنده خواهند جوشاند. در ضمن حیوانات را آگاه ساخت که باید انتظار بدتری هم داشت چه بسا فریدریک و کسانش در هر دقیقه حمله ای را که مدت ها انتظارش آغاز کنند در تمام راههای قلعه غراول گمارده شد و به علاوه چهار کبوتر با پیام های مسالمت آمیز و به امید تجدید روابط حسنه با پیلکینگتن به فاکس بود شدند. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که فردریک با اعوان و انصارش از دروازه پنج کلونی وارد شدند. حیوانات با رشادت تمام گورش بردند اما این بار فتح و زفر به آسانی جنگگ آفدانی نصیبشان نمیشد. آدمها پانزده نفر بودند و شش تفنگ داشتند و به مجردی که حیوانات به فاصله پنج متری رسیدند شلیک کردند حیوانات تا به مقاومت در مقابل گلوله‌ها را نیاوردند و با وجود کوشش های نافلعون و باکسر به عقب رانده شدند و ادهی هم مجروح شدند همه داخل ساختمان جمع شدند و با احتیاط از شكافهای در و سراخ های کلید مراقب خارج بودند همه چراگاه و آسیاب بادی دست دشمن بود در آن لحظه ناپل اون هم تکلیفش را نمی دانه دامش منقبض شده بود بدون ادایی کلمه بالا پایین قدم می زد چشم ها به فاکسود دوخته شده بود اگر پیلوکینگتن و کسانش به یاری می آمدند، هنوز امکان پیروزی بود اما همان چهار کبوتر قاصد برگشتند یکی از آنها حامل تککا غذی بود رویش با مداد نوشته شده بود تا چشمت کور فردریک و کسانش اطراف آسیاب بادی توقف کرده بودند و حیوانات را نگاه میکردند. زنزمه ای حاکی از ترس بلند شد چه دوتون از آدمها اهرام و پتک دست گرفته بودند و میخواستند آسیاب بادی را خراب کنند. ناپلون فریاد کشید رفقا چجا باشید چنین کاری امکان بازیو نیز دیوارهای آسیاب زخین دردانه است که با اهرم و پتک حتی ظرف یک هفته خراب شود. اما بنجامین که حرکات آدم ها را با دقت زیر نظر گرفته بود و میدید که آن دو نفر مشغول کندن چاله ای نزدیک پای آسیا هستند پوزه‌ی درازش را با وضعی که از آن تمسخر میبارید تکان داد و گفت همین حد را می‌زدم نمی‌بینید دارن چه می‌کنند یک لحظه دیگر چاله پر از مواد منفجره است حیوانات هراسان منتظر ماندند دیگر امکان خارج شدن حمله نبود پس از چند دقیقه دیدند که ادمها از هر سو میدوند و متعاقب آن قرهش کرکننده‌ای برخاست کبوترها به هوا پریدند و همه حیوانات جز ناپلئون با شکم خود را روی زمین انداختند وقتی برخاستند لکه عظیمی از دود سیاه محبته ای را که آسیاب بادی در آن قرار داشت در بر گرفته بود نسیم به تدریج دود را پراکنده کرد دیگر آسیا وجود نداشت با دیدن این منظره ترس و نومیدی لحظه قبل زایل شد و حیوانات با فریاد انتقام جویی و بیان آنکه منتظر دستور شوند دست جمعی به جلو یورش بردند و به طرف دشمن تاختند به گلوله های آتش آتشباری که بر سرشان میبارید توجهی نداشتند جنگ سختی در گرفت آدم‌ها شلیک کردند و وقتی حیوانات نزدیک می آمدند با چوب دستی و پوتین های سنگین حمله میکردند. یک گاو و و دو قاز کشته شدند بقیه هم مجروح بودند حتی ناپلعون که از پشت سر عملیات را اداره میکرد نوک دمش با ساچمه بریده شد آدمها هم از آسیب بینصیب نماندند سر سه نفرشان از ضربه سوم باکسر شکست و شکمی یکی با شاخ گاوی دریده شد شلوار یکی را جسی و بلو بلجر دادند و وقتی نه سگ گارد مخصوص ناپلون که در پناه پرچینها کمین کرده بودند کنان اطراف آدمیان سبت شدند وحشت همه را فرا گرفت و متوجه شدند که در خطر محاصره اند با فریاد به کسانش دستور داد تا امکان باقی است از معرکه خارج شوند و لحظه بعد دشمن ترسو در حال فرار بود ایوانات آنها را تا انتهای مزرعه دنبال کردند و واچن لگت آخرین آنها را از میان پچینهای خاردار بیرون راندند پیروز شده بودند اما خسته و خونین آهسته و لنگان لنگان به طرف مزرعه راه افتادند منظره دوستانی که روی چمن دراز به دراز افتاده و مرده بودند به را به گری انداخت در سکوتی غمنگیز در محلی که زمانی آسیاب بادی بر بود، ایستادند به کلی از بین رفته بود تقریبا کوچکترین اثری از آن باقی نمانده بود حتی قسمتی از پایه های بنا هم فرو ریخته بود در تجدید بنا این بار برخلاف بار قبل نمیتوانستند از سنگ های فرو ریخته استفاده کنند که این دفعه سنگ ها هم نبودند شدت انفجار آنها را صدها متر دورتر دورتر انداخته بود گویی از اصل آسیابی وجود نداشت. وقتی که حیوانات به ساختمان نزدیک شدند، سکویلر که بدون هیچ دلیلی در طول جنگ غایب بود، جست و غیز کنند بر حالی که را به سرعت کم میداد، با توسمی حاکی از رضایت خاطر به طرف آنها آمد و حیوانات صدای شلیک توپی را از سمت ساختمان چنیدند. باکسر گفت، برای شلیک میکنند؟ سکویلر فریاد کشید، فتح و پیروزی را جشن گرفته ایم. باکسر که از زانوانش خون میچکید و یکی از نعلهایش افتاده بود و سومش چاک برداشته بود و دوازده ساچمه در پای عقایش فرو رفته بود گفت چه فتی؟ چطور چه فتی رفیق؟ مگر نه این است که ما دشمن را از خاک خود خاک مقدس قلعه حیوانات رانده ایم باکسر گفت ولی آسیابادی ما را ویران کردن دو سال تمام روی آن کار کرده بودیم سگویلر گفت چه اهمیتی دارد؟ آسیاب دیگری میسازیم اگر دلمان بخواهد شش آسیاب هم میتوانیم بسازیم رفیق تو نمی توانی عظمت کاری را که این درک کنی همین زمینی که ما الان روی آن این در تصرف دشمن بود و اکنون در پرتو رهبری رفیق ما الان هر وجب آن را پس گرفتهایم باکسر گفت پس ما چیزی را که قبلا داشتهایم پس گرفتهایم سویلرگفت بله معنافت همین است حیوانات لنگان لنگان وارد حیات شدند ساچمهها زیر پوست باکسر سوزش درد داشت او پیش آبیش و از همین حالا به کار شاق ساختن آسیاب بادی فکر میکرد و در عالم تصور خود را آماده کار میکرد اما برای اولین بار به این فکر افتاد که یازده سال از سنش گذشته و قاعدتا از نیرومندش دیگر به قدرت سابق نیستند اما وقتی حیوانات پرچم سبز را در احزاز دیدند و بار دیگر صدای شلیک را شنیدند در مجموع هفت گلوله شلیک شد و نطق ناپلئون را گوش کردند که رفتار آنها را می میسزاید و تبریک میگوید به نظرش آمد که واقعا فتح بزرگی نصیبشان شده است از شهدای جنگ تشهی آبرومندی شد باکسر و کلوور واکنی را به جای نعشکش کشیدند و ناپلعون شخصا در رأس دسته حرکت کرد تو روز تمام صرف برگزاری جشن شد. آوازها خواندند، ندقاهایی راد کردند، تو پاش شلیک شد و به هر حیوان یک سی و به هر پرنده صد گرم غله و به هر سگ 20 کوکیه هدیه شد و اعلام کردند که جنگ جنگ آسیا به بادی خوانده ناپل اون نشان جدیدی به اسم نشان علم سبز ایجاد کرد و آن را به خود اعطا کرد و داستان تأسف انگیز ها در شادمانی و فراموش شد چند روز پس از این حوادث بود که خوکها یک صندوق ویسکی که در زیر زمین مانده بود و در روز تصرف ساختمان به آن توجهی نشده بود پیدا کردند شب آن روز صدای آوازهای بلند از ساختمان برخاست. با کمال تعجب قسمت از آهنگ سرود حیوانات انگلیس هم با آن صداها آمیخته بود. شب در حدود ساعت نه همه آشکارا دیدند که ناپل آن در حالی که کلاه مندرس آقای جونز را برسر دارد از در پشت ساختمان بیرون آمد و به سرعت دور حیات دوید و مجددن داخل امارت شد. ولی صبح روز بعد ساختمان را سکوتی مطلق در برگرفته بود و حتی یک خوک هم در جنبش نبود. نزدیک ساعت نه سرکلی سکویلر پیدا شد آه سراح می چشمانش بینور بود و دومش شل از پشت آبیزن بود کاملا پیدا بود که بیمار است حیوانات را جمع کرد و به آنها گفت برایشان خبر وحشت آوری دارد رفیق نابل اون در حال مرگ است زدجه حیوانات بلند شد پشت درهای قلعه کاخ ریختند و حیوانات نک پا راه می و با چشمانی اشکبار از هم پرسیدند اگر رهبرشان از بین برود چه خاکی بر سر خواهند کرد. شایع شد با تمام احتیاطها بالاخره سنابال کار خود را کرده و موفق شده از غذای نافل اون را مصموم کند ساعت یازده سکویلر دوباره آمد که خبر دیگری بدهد. پیغ نافل اون به عنوان آخرین کاری که در زمان حیات کرده است دستور داده که مجازات شرب الکل اعدام است ولی هنگام شب حال ناپل کمی بهتر بود و صبح روز بعد سکویلر موجه داد که وی رو به است و شب بعد ناپل شروع به کار کرد و روز بعد بود که ناپلئون به ویمپرد از سور داده است از ولینگدن کتاب هایی درباره عرق کشی و تفتیر بخرد. یک هفته بعد ناپل امر کرد قبع زمین کوچک پشت باغ باقی را که قرار بود چراگاه حیوانات بازنشسته باشد شخم سند. اول گفتند زمین کم قوت شده است و باید دوباره کشت شود ولی بعد روشن شد که نافل آن تصمیم گرفته است و آن زمین جو کارد در همین ایام پیش آمد غریبی رفتاد که کسی از آن سر در نیاورد شبی در حدود ساعت دوازده صدای شکستن چیزی به گوش رسید و حیوانات سراسیم از خبیل بیرون پریدند طبی بود محتابی در پای دیوار انتهای طبیلی بزرگ نزدیک دیواری که هفت فرمان آن نوشته شده بود نرد روی زمین افتاده و شکسته بود سکویلر از حال رفته کنار نرد شکسته روی زمین ته شده بود در کنارش یک چراغ بادی، یک قلم و یک ظرف پر از رنگ سفید باشگون شده بود سکا فورا درش حلقه زدند و وقتی حالش تا حدی جا آمد او را بردند از حیوانات سر از این ماجرا در نیاورد. جز بنجامین پیر که با رندی را رو میجوماند و پیدا بود که مطلب را فهمیده است ولی چیزی نمیگوید چند روز بعد که موریل پیش خود هفت فرمان را میخواند متوجه شد که باز یکی از فرامین طوری نوشته شده که حیوانات غلط به خاطر سپرند حیوانات تصور میکردند که ماده پنجم فرمان میگوید هیچ حیوانی الکل نمینوشد و حال آنکه چند کلمه را فراموش کرده بودند فرامان پنجم میگفت هیچ حیوانی به حد افراد الکل نمی نوشد